دلام ازش خش و چود شد منافر شود سوزه تو در, در قلبم شو اخیار محمد ای دلم, دلم ای پاره جان, جان فدا سازم هزاران جان, جان به قربان فدا سازم هزاران جان به قربان کجا بینم به چشمانم حضورت که طولانی شده هجران رویت دلم پر می کشده تا سوی خزران به آنگم بد نیر زدروم و کسران به گم بد نیر زدروم و دلم از اشق و شاقت شده سوزه تو در قلبم چو افیگرد محمد ای دلم ای ی جان فدا سازم هزاران جان به قربان دلم از عشق خوشاغت جان شد شده سوزه تو در قلبم چو اخیگر محمد ای دلم ای پادای جان, به جان, به جان سازم هزاران جان به قربان سازم هزاران جان به قربان کجا بی بینم به چشمانم حضورت که طولانی شده هدران رویت دلم پر می کشد تا سوی خزرا به آنگم بد نیر زدروم و کسرا به آنگم بد نیر زدروم و دلم از اشق و شاقت شد منور شده سوزه تو در قلبم چو اخی محمد ای دلم ای پاره ی جاد سازم هزاران جان به قربان فدا سازم هزاران جان به قربان